این ما الله علی الله و آل الطیبین و الله اللهم اغفر لنا یا از خدام از اینکه نتیجه نهایی بشه این نکته رو امروز توضیح بدین در کیفیت استدلال و بوی خروج در این بحث ما بعد از این که روایات شیعه رو خوندین روادیگی در کتاب و ما داریم روایات و فتا ها و کیفیات بحث رو متعرض شدیم یک نقطه رو در نظر بگیریم به نظر ما در این جور مباحث که بخوایم وارد بشیم میتونیم اون در اون محیط اسلامیش وارد بشیم یعنی ما مسئله رو از زبایی دینی و از زوایایی که بین آمنه مسلمان ها مخرق شده از اون زاویه وارد مسئله بشیم و در این زاویه ما از عهد صحابه در حقیقت وارد میشیم یعنی سعی ما اینه که شما این تصویر رو بکنید که خودتون رو در زمان صحابه حالا بعضی وقتا اختلاف در زمان خود الله بوده که کم بوده بیشتر اختلاف بعد از الله و مبدع اختلاف و منشه اختلاف و منشه, اختلاف و منشه اختلاف و چرا ادعی از این رو گفتن ادعی از صحابه رو گفتن و بعد تابعین و بعد فقها سعی برای اینه که بتونیم در این جور مسائل از اونجا شروع کنیم البته خیلی از مسائل از صحابه شروع نشده از این شروع شده خیلی از مسائل از فقها شروع شده طبعا ما در این مسائل به مقدار علم اونها صحبت می کنیم یعنی به مقداری که در کتب آمده ممکنه مثلا ما از اقوال صحابه فعلا چیزی رو پیدا نکنیم خیال بکنم از تا این شروع شده در تا که مسئله از صحابه شروع شده به ما نرسیده پس ما در کل این بحث, بحث بکنیم روش بحث ما به این ترتیبه که اولاً سنگ می کنیم از نظر دینی مطلب مصرح بشه و بحث صحابه و تا این اونه دطوره بعد از اینکه که اونجا روشن شد حالا به نتیجه برسیم نتیجه رسیدن ما هم تقریبا جنبه علمی نداره یعنی بیشتر جنبه تصوره جنبه تصدیر نیارا من همه رو باید از اول تحلیلاشو بگیم چرا؟ چون نمیخوایم بارد این بحث بشیم پس کنیم مثلا فلان صحابه اینجور گفت فلان اینطور گفت این ثابت هست نیست فلان طابعی اینجور گفت است چون اینا یه لوازم دیگری میخواد که از محل کار ما شه. من هدفم بیشتر اینجا جنبه های تصوریه نه جنبه های تصدیقی یعنی تصور اون نزاع و اون بحث و ریشه های اون بحث بشه بعد از اون بیاییم روی بحث اهل بیت غیر از اون جنبه نزاعی که بین اهل مسلمان ها پیدا شد بیاییم روی قسمت اهل بیت و ببینیم اهل بیت در این مسئله چه کاری کرده همان در بخش سهله بیکام قبل اون راهی رو که ما میریم هم از امیرالمومنین شروع میکنیم و مجموعه ای که منصوب به امیرالمومنین است چند توضیحات در این بخش دیگه ما وارد بخش تصدیقی میشیم اون یکی اولیش تصوفیه این دومی تصدیقیه تصوری نیست یعنی مثلا مجموعه ای که ما از امیرالمومنین داریم چیه از این مجموعه کدوم قابل اعتماده؟ خودام قابل اعتماد نیست بعد از مجموعه ای که از ائمه بعد ما رسیده و بعد بعد از اینکه از ائمه ما علیهم السلام حالا تا جایی که گویا در مسائلی ما از توقیعات هم داریم تا امام زمان داریم بعد از تو همین مسئله غنا از امام زمان هم داریم از جز مسائلی است که تو از امام زمان هم در همین توقیه معروف الملهاوس الواقعه در اونجا هم توی مسئله غنا در یکی از حقوق غنا از توقیعات هم داریم بعد از مسئله توقعیات حتی و روایات آدتا به طور طبیعی وارد بحثه که این از خصائصش ماست از که در این خصیصه در فقه هیچ کدام از اهل سنت وجود نداره در این خصیصه وارد یک مرحله میشیم که ما اصطلاحا مرحله انتقال از نصوص به فتاوا این در فقه ما یه مرحله آمده که مرحله انتقال از نصوص به فتاباست برای جهت فقهی و بعد وارد فقه به اصطلاح منسوس میشیم مثلا از سالهای 3250 تا 300 تا 350 منتری مرحله انتقال از نصوص به فتاوا از 350 تا 400 تا حدود صد سال صد خورده سال بیشتر مرحله فقه منسوس ماست بعدها در همین مرحله تاثیر شیخ طوسی فقه تحریه ما شروع میشه اما خب فقه منسوس هنوز سببت خودش داره تا مثل مرحوم صاحب شرایه صاحب شرایه جمع میکنه ما بین فقه منسوس و فقه تفریعی فقهی که در روایات نبود البته چون مرحومش اختلاف هم نمشته بوده این به یک مقدار آراء اهل سنت هم اضافه میشه بعدها تفریعات ما بیشتر توسط علامه خود مرحوم محقق خیلی نقش داشته و علامه مثل خوهر ایشان پسر خوهر محقق نقش بزرگی داشته خصوصا که ایشون هم مثل شیخ فقه خلاف هم داره تذکره داره که فقه اهل سنت هم دوش هست و کتب انواع و کتب فقهی هم داره و اصول هم داره یعنی زیر بنای رو برای ما مبانی حدیثی و رو هم داره حلامه تقریبا میشه اون که زیاد دیگه انعکاس پیدا کرد رو بعدی ها کارهای علامه بود این کار رو شروع کرد و بعدی ها دیگه روی سغراب میشدن اصلا بودن خبر سعی قبول کنم این قبر بخاطر فلان سعیی نیست علامه رو سعیی اینطوری این طوری که این یک دوره اجمالی از فقه شیعه رو الان خدمتون اعرض کردیم به لحاظ حدیث هم اعرض کردیم ما یک مرحله اولیه داریم اون مرحله است که مرحله اول داریم مرحله ضبط و ثبت روایات یک مرحله متوسط داریم در این مرحله متوسط سعی شده رواریات دستبندی بشه مثل حسین سعید بزرگان این مرحله مثل حسین سعیده سعی کده رواتسفنه ها توی ایک یک مرحله متأخر هم داریم مثل کلمی مثل مغموم شیخ صدوب مثل شیخ توسی در کتابش یه مرحله متأخر هم در حدیث شیعه داره و وقت حدیث شیعه مثل فقه شیعه دارای خصائص خاص خودشه حالا من در خلال بحث غنا این تطبیقم میکنم که کاملا برای اون بوشن میشه. این راجعه به اجمال اون بحث راجعه به اون بخش اول که مربوط به دنیای اهل سنت و دنیای مسئله هست در اونجا ما بیشتر سعی میکنیم که تا جایی که ممکنه رو کلمات صحابه رو کلمات خود تابعی اون ریز ریزه کاری ها و فنیه هاش رو پیدا بکنیم البته ارز کردن ما در اونجا دنبال تصدیق نیستیم هم در اهل سنت کسانی که در همون مراحل اولیه تصدیق میکن تصویر تصدیقی میکنن تصدیق، یعنی عمل فرهگیشون، عمل علمیشون تسکیهیست اینا رو مشتهد میگن مثل ابو حنیفه و مثل شافی اما بعدی ها که در کلمات و تفریعات روی مذهب شافی شاید مثلا درجه از اشتحاد داشته باشن لیکن اشتحاد در مذهب میگن اینی هم که الان در زبان ما در کتب شیعه یا در استلاحات ما کتب شیعه متاخین که شیعه قائل به انفتاح باب اشتحاده اونا قبول ندارن اینو دقت بکنه سنی ها میگن مثل ما هستیم شما انتظار بابه اجتهادی این توی زبان ها خیلی معروفه چرا مرادشون از انفتاح باب اشتهاد نه این که شما مثلا یک فقیه هنفی بیاد روی آرا ابو حنیفه مانور بده اینو نشاد انفتاح نمیذاره اجتهاد در مذهب میدونن. رو اجتهادو بی میدونه کسی از همون اهل صحابه از کتاب و سنت میتونه مستقیما استخراج کنه اونا میگن این فرم ما باره به شما به کلمات وام سالم پس شما هم مستقیم بر نمیگردیم به دوران رسول الله به کتاب رسول الله لذا اینه که در بین چون خیلی در بین حالا ای کمی کمتر شده وقتی خیلی که شما سنیا قاعده انصداد باب اشتحادید ما انفتاح باب اونا باهم انصدادی میزنن. این در تقسیم بندی خودشون میگن شما ها که میخوشتیالی میکنید شما هم این فتاح باب اشتحاد رو قائل نیستید این فتاح باب اشتحاد اصطلاحا اینه که این شما برگردید مستقیماً به کتاب و سنه و صحابه و تابعین و عدله اونها رو یکی یکی بررسی بکنید، اختیار بکنید. اما شما برگردیم به کلمات امام صادر و امام باغر در اونها اشتحاد میکنین بگیم مثل ما تحاصل در کلمات شافعی یا در کلمات ابو حنیفه اشتحاد این رو انفتاح نمی میگن ما با اشتاد مفتور می دویم شیعه باب اشتحاد میگن در شما مثل این انفتاح نیست هستن الان در میان اهل سنت ادهی حتی زیاد نیستن سعی می کنن انفتاح باب اشتحاد رو عملا انجام بدن بدون اینکه به یکی از مذاهب معروف تقییب داشته باشن خودش استنب پس اون کاری که الان من میخواب در اینجا عرض کنم ولی زمان عرض این کار ما تصوریه این اگر تصدیقی باشه همون اصطلاح به اصطلاح این فتاح باب اجتهاده یعنی ما فعلا مخیلی ببینیم که مجموعه برخوردی که از زمان صحابه و بعد تابعین و بعد فوقها الهی و با سیره رسول الله شده راجع به قنات چیه و عرض کردیم اصطلاحشون اگر چیزی در کتاب نبود این رو جزو سنن میدونستن البته سنن به معنای یعنی به اصطلاح معانی چیزی داره یعنی یک معنای عریضی داره یک سنن اون است که خود پروردگار جعل کرده و تصریح شده. اینم سنن میدونم دو اون چیزی که جعلش روشن نیست مثلا دو تا قول هست سه تا قول هست ما ترجیح یکی بدیم یک خانمی میصره فاطمه بنت این شوهرش طلاق به اصطلاح خلع داده طلاق سوم طلاق کافر چون نه. پیغمبر که تو حق مسکن نداری بریه جدی دیگه از خونی شو از در خب از همون صحابه نقل از عمر نقل شده از عایشه نقل از چند نفر که وقتی این حضرت خاطر منتقل نشه ترتیب اولی من گفتن تو حق مسکن نداری طلاق طلاق باهانه اونا میگفتن نه تو اشتباه کردی بی خود گفتی بین خود صحابه بحث شد. ادعی از صحابه هر این تازی دختر جوانی هم بوده بود 18 ساله بوده یکی از مصیبت‌های های سنت خیلی ارقامش از بچمچ‌ها گرفتن این حدود 18 ساله بوده خود عمر میگفت نه تو بی خود میگی این, این زن طلاق داده شده شو خونه شوهر زندگی نکنه در واقعش از کجا بیاره کجا بره ایام عده مراد از ایام این نفقه در ایام عده تو ایام عده خونه شوهر باشه از نفقه روزی بکنه همین شو ببینید بحث بکنید این خیال که مراد از اختلاف در سنت مثلا بحث سنت فقط یک روایت رسول ها مثلا فرمودی دارند به اوقات ای این طوری بوده خب طبیعتا طبقه بعدی و بعدی و بعدی روزه ابن حض ابن حض مصره که حق با فاطم بنتقیست به نفقه نداره طلاق با این متلقه با این نفقه نداره نه حق مسکن داره نه حق نفقه داره همون روایت فاطم بنتقیست قبول کرده خود ابن حضم نهاره که عبر اعتراض کرد آیشه اعتراض کرد اونا معتقلیم که این زنی که لعله ها اختعد این اشتباه کرده لا نه خدا حکام اونا من قول امرات لا نه زی از ام لا ام عمل علمه حالا عبارات مختلفی من نمیخواب پس یک نحوه سنت این بود که در جایی که مسئله خلافیست بتونه اختیار بکنه یا اختیار قول عمر رو میکرد یا اختیار قول فرسرین دوسترخانه ها که مثلا نفقه نزده تقصیم میکنه دو تا سه گاهی اوقات منشع اختلاف اخذ به عمومات بود عمومات کتاب عمومات سنده مثلا این مورد خصوص ذکر نشده بود مثلا این بحثی که مثلا میگن زن از زمینم از بر عموم کتاب اختضای این میکنه یا مثلا حدهشون منطردن که این حبوه که در فقرشیه از باطله چون عمومات کتابی هست که از شخصیمونه بین مرسه تقسیم میشه چرا خصوصی یک مقدار اشیاء باید به پسر بزرگ داده بشه. این مخالفه با عمومات عرض دل آخری دیگه منی مخالفه این بحثا بشه. اینه که ما تمسک بکنیم به عمومات و بگیم این شرط درسته مثلا شرط در باب نکاح شرط میکرد نکاح میکرد یک شرطی هم قرار میده. به خصوص امواتشان. تو خود اولوی ما هم داریم که اموات. ایده هم میگوزن به اموات شرط نمیشه مخالفت مراجعه کنه. حالا یه وقتی نکته شعر کنده صحیحش هم همینه در باب نکاح نمیشه به اموات شرط مراجعه. نکته فنیش حالا جدیه. قرار هم کیفیت ماکان میادن این مجموعه اسمش میشد سنت. اون می شاشو سنت آیا به اموات مراجعه بکنیم؟ نکنیم. از این تا شد. یارو چه چیز از اصول هم اضافه شد مثلا استصحاب مثلا خود قیاس اگر یه حکمی رو از قیاس در آوردن گاهی به او اطلاع سنت می‌کردن به علاوه اگه دقت کنیم توره به تمام داره ان سنت علاوه بر قیاست سنت رو که سنت رسول الله با قیاس و احکام عقلی خودتون در بیارید این باید ترفی از رسول الله بشه این موهقتی، این در حققت دین نیست این یک چیز است که شما دارید پس این چند تا شد قیاس بود استثاب بود اینا هم اضافه شد مطلب پنجم این چارتا شد پنجم عبارت از مسادر تشریعی بود که تدریجا اضافه شد من از کل از زمان دومی بر مسادر تشریع تدریجا اضافه شد مسادر من چند بار عرض کردن کتب و اصول اهل سنت رو اگه نگاه بکنی به طور کلی در مهور حجیته. لیکن دو تا حجیت قائل هست یک حجیت مانه مسادر تشریف مثلا میگیم کتاب حجیت سنت حجیت یعنی از مسادر تشریف یک حجیت مانه ترقه بر رسیدن به مسادر تشریف که هم ما امارات عدله عدل و امارات به حجیت مسادر تشریف اصطلاح خاص اصوله این که میگن در منطقه پس که بارهانه حجت میگن به این معنی در منطق نیست این خاصه مسادر تشریف لذا اصول به طور کلی به این در کتبه سنت به دو قسم میشه مسادر تشریف و طرق اثبات حالا خود من اصطلاح هم مسادر تشریف بسیم حجت ثبوتی اصطلاح خود من صحیح باشه نباشه وجهت ثباتی تو رو به ثبات رو و از کردیم بعد از پیغمبر بر این بحث اصولی زنده شد کذ پسکن یعنی بعد از پیغم بر اش اولین بحث های اصولی رو مسازه تشویی بود مثلا وجودجد زوار بحث نمیکردن جا چار شده تو عرب بزن خیلی بحثی میگ تمالی چی چخوا بگن خبر واحد رو بحث نمیکردن خبر واحد حجته که متصل تو اصولم مشغولیم این جزو تراغ اثباته خبر واحد جزو تراغ اثبات اما به جای بحث در خبر واحد اجماع حجت یا نه چون اجماع جزو مسادر تشریعی بود استحسان حجته یا نه استحسان احتمال داره مرجعش هم برگشت هم به اجماع باشه استحسان این بود که ممکن است یک عملی بین جامعه اسلامی جا بیفته و قبولم بکنم انجام بدم اما وقتی دقت رو خواهیم بکنید روی زوابت شرعی منسجم نشه با زوابت شرعی این اسمش استحسان بود اون دقیقه استحسان چی؟ اصطلاح استحسان شد برای تو مثلا باند در کشمار استحسان بان رو افتاده بان هستیم. ایران هست که عربی هست پاکستان هست جای دیگه هست مسئله بانداری را افتاده تاكيد نگفتیم با جوابد شرین مشکل ربا داره و مشکل کذ بود با جوابد الشرعی نمی سازه اما تو جامعه اسلامی راه افتاده اون مثال قدیمیشون تیارات مثلا مثال بانک داریم. مثال قدیمیشون یه حمام رفتن چون آخه بوده حمام اگه اجاره از این چیه چون یه کسی میره حمام 10 دقیقه حمام بود در میگه کسی نیم ساعت میره این زمانشون اگر نبود مقدار آبی که میگیره میگفت این با جوابد اجاره نمی سازه این حمام دیزاینم میگم خیلی خیلیه. حالا بالاخره مصرم دارن میرن، حمام میرن میاد. همین فولم میرن جا افتاد. همین که جا افتاد. یک برای اینکه تعبیر اینه اجزای حمام. اجزای حمامی در مثال استحسان در کتب و اصولشون صحبت نپورد. و این به نظر من علاوه بر مجموعه راههایی بود که ایده از علما حتی از صحابه من توضیحاش عرض کرده مرجعش به صحابه است. از صحابه سعی کردند اینو این با این باب رو باز بکنن برای اینکه یه این مقدار مشکلات داخل جامعه اسلامیش حل بکنن باشه اجماع رو عمر مطرح کرد اج... اصل طرح اجماع مال اومره اجماع و قیاس مال اومره قیاس بود اجماع بود استحسان بود مصالح مرسله بود سد ذرایع بود دیگه نمیخوام حتی شورا اصلا شورا رو اینا کردند کردن که ما یکی از مصادر تشریع ما الان هم که خود ایران ما میگم که مثلا مجلس شورای یا پارلمان واسه قانون گذاری بکنه، تشریع بکنه. فقط مجلس مشورتی نباشه. این تفکر تفکر اهل سنت هم هست. البته در کتب اصولی که شما تووزه میکنید اینا رو نیاوردن. قیاس و اجماع رو مطرح کردن، استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله و شورا و مثلا شورا رو ابن هز مفصل متعرض شده تو اون مسادر تشریعی که او شورا هم هست ادهه میگفتن که اگر مسلمان ها مجلس شورای تشریعی اکثریت چیزی بگه میشه حکم الله این مصدر تشریعی با شورا میشه احکام الهی رو جعل کرد به خاطر ظاهر آید. و توی ایران هم که در ده سال قبل مشروط درست شد هدفشون همین بود از شورا و این آیه همراه هم شورا به هم هم, هم یعنی آیه امرو هم شورا بینه در مجلس شورای اول که بسیار ردها مفرح کردن به خاطر اینکه امر مسلمان ها امرو هم امرو مسلمان ها به نحوه شورا تعییم میشه من بارد این بحث ها میشم فقط محسن اشاره آوره بکنم ببینید بعد از سی منبر ارکرم مهمت این بحث های اصولی رو مسادر تشریه اما از سال صد،, صد تا 180 هشتا تیری او اصول شروع میکنه به تدویم مهمترین بحثا طرق اثبات هر چی که دور بیشه او طرق اثبات بحثی کنه که این خبر عدله مثلا عدل ان عدل، این ان فلان ان رسول الله این ثابت ترهی ای؟ کنید مثلا این عبارت افعال زور در حجوب دار نه مراد متکلم حجوب اینجوری میفهمیده پس اصول که بعدها در شکل تکاملی یافته اش اصول فقه دو بخش عمده است. مصادر تشریع و طرق اثبات لو در تاریخ اسلام ما اینجوریه. بعد از سیر اندر احکام مصادر تشریع. بعد از سال از صد از ابا سالهای 100 تا 120 اصول بیشتر توی فقه و فروعه فقهی ظاهر میشد. مثلا اگر میگوی کسی لباس قصفی نماز کن نمیامد بحث اجتماع رو نه اثر رو کنه میامد بحث این که این نماز باطل یا نه فتوه می شد. میشد اواخر قرن دوم تبدیل به اصول شد بعدها از قرن چارون به بعد این دو تا بحث با همدیگه منقع شدن شدن حجت به معنای مسادر تشریف یک مقدار از کتب و اصول اهل سنت اینطوریه دیگه یه دست به شده دست به معنای تخمیلی مصادر تشریع نصفش هم به عنوان طرق اثبات مثلا شما الان این بحثی که من گفتم بیاین رو نگاه بکنید ببینید کفایه انسجام نداره این بحثی مثلا این ما عالم نه این خصوص کفایه حالا فرض کنیم رو منو ناین طرز منو استاد اینا خیلی انسجام علمی تازه یکی از مشکلات بحث اصول ما اینه یک انسجام واضحی نداره انسجامش این جوری است مصادر با جدا بیان طرق با جدا بیان. حالا قیلی دیگه مسائل دیگه هم با جدا بشه که فعلا نمیخوام وارد بحث بشن پس خوب دقیقه بکنید اون چه که ما در زمان صحابه و تابعین و بعد زیر بنا شد برای کار فعاها بیشترین قسمتش مسادر تشریع بود و توی این مسادر تشریع ارز کردن دحس روایات رسول الله هست بحث اجماع هم مالک اجماع اهل مدینه رو داره مساله مرسله هست از عبدالله رو به مسعود نفت شده استحسان استحسان هست شورا هست و موارد دیگر از این قبول و اصول عملیه رجوع به اصول عملیه مثل استصحاب هست گفتن نه به اصول عملیه مراجع نمی مثال خیلی بارز استصحاب هم که خیلی مبتلا به بود مثال بارزش فرصه مثلا آبی که به خون نجست شده رنگش هرمز شده از کربن بیشتره یه روز دو روز مون رنگش پریسبید شد این پاک این استثنای که قالب استصحاب بودن گفتن قبلا ناجز بود و حالا ناجزه کسایی که قالب استصحاب نبودن می گفتن قبلا رنگش قرمز بود رنگش قرمز نیست هم مثال معروف دیگه خارومهایی که بعد از انقضاء دم و قبل الاقتصال اونایی که قالب استصحاب بودن می گفتن حالا وقتش حرام و الان حرامه اونام که قالب استصحاب نبودن میگن نمیتونیم به استصحاب مراجعه کنیم اصول براءت جاری میشه شک میکنیم وقتیش حلال یا نه از ساز دراج پسور کش جای پس اینا مجموعه ای بود نمیدونم برای شما روشن شد. این من مجموعه ماها به طور متعام در خیلی که شما هم در حوضه های خودمون میکنیم از این راه ها وارد نمیشیم. چون این اون راه فکر عام به اسلامیه من هم الان با این کلام مصرف میکنم باز هم وارد نمیشم چرا؟ چون ما با روه شما نمیخوریم بحث رو بحث عوض بکنیم ولذا ممکن است شما توی بحث اسلامی به یک نتیجه برسید و که وقتی روایت اهل بیت نگاه میکنیم این اهل بیت مرادشون اینه ما به لحاظ خودمون وظیفمون رجوع به اهل بیت. البته رجوع اونها به علماشون مثل از حریفه از باب یک مسئله اصولی است از باب حجیت قبل و فتاوای فقیه و مشهه ما از باب مسئله کلامی اسمت اهل معالم سلام این با هم فرق داره اونا اگه به ابو حنیفه مراجعه کنن یا شافعی دنبال یه مسئله اصولی هستن حجیت فتوای مشهد ما دنبال یه مسئله کلامی هستیم البته میگم اونا میگن شما مثل ما ای. نه ما مثل اونا نیستیم زارهش مثل هم نیست اما اونا از یه وادی وارد شدن ما از وادی دیگری وارد شدیم در حقیقت دقیقا مثل اونها نیستیم و مثلا همین حدیثی که پیغمبر فرمود انام سوموله رؤیت بعث اللهی مثال ارثون شما خیلی معلبه شده حالا ممکن است شما بگیم ما اگر ما باشیم و همش یه جایی از سنت هم قائله این روایت این روایت سوموله رؤیت ما اینطور میفهمیم که پیغمبر اکرم فرموده رؤیت اعتبار داره به خاطر اینکه رؤیت نشون میده تولد ماه رو و ما راهی از محاسبات برای تولد ماه نداریم حلال نداریم اما اگر راهی پیدا شد از محاسبات برای تولد حلال به محاسبات برگرد این کاری کرا سنوی هم میتوند چون از کل اولین روایت یک صدری داره که ما نقل نکردیم در مسادر ما نیست در مسادر اهل سنت هست پیغمبر کنوند نا امتون امیه ما مردمان بی هستیم لا نكتب ولا نحصب علم نجوم پس انه امه عمیه، لا نكتب ولا نحصوب. حساب در این جاله تعلم و عبد الصهین ولی بله. حساب حساب در اون زمان معنای علم نجومه کلمه منجم به معنای تلسبات و سحر و جادوگریه. بعد در دنیای اسلام با اومدن به اثر یونانی عوض شد منجم به اصطلاح در روایات من صدق منجم است اونجا مراد تلسمات و جادوگر و چیزها مراده اما وقتی میگن یعنی حساب مرادشون علمه رضا نوشیم هم توی بعدی ها که از فلسفه یونانی آمد جذبه فرو علم غیازی برادادشون علمه مرادشون علم علمه حساب. انا امتون امیه لا نفتوب و لا نحسو فسونه لرعیته و افترو لرعیته ما محاسبات نداریم ما علم نجوم نداریم پس چیکار بکنی نگاه میکنی هر وقت ما رو دیدی روزه بگیریم دیدیم با دو مرتبه فاصله ما بگین دو تا دفعه دوم دی افطار خب اینا بعضی از صوفیالا چرا گفتن بسیار خوب پیران رو انامتون امیا ما مؤمن امی نیستیم ما بلدیم ما محاسبات داریم حالا شما محاسبات نبودی پیش شما حالا ما داریم میگن از این عبارات ما بخویم در که اگر محاسبات بود و درستم هست این کلام پیغمبر ما در حدود 3500 سال قبل از اسلام چی محاسبات نجومی داشته دقیقا بیان میکنم ماه کی وارد ماه میشه چقدر تو ماه بعد چقدر تحت کی از تحت و خارج تمام اینا رو محاسبه می‌کردن خصوص رو قبل از وقوعش اول سال قبل چند ماه اعلام می‌کردن فلان تاریخ فلان ساعت فلان لحظه اینجور وارد میشه در اینجا. اینجور. تمام ما چند هزار سال قبل از اسلام معلووم است اما در دنیا عرب نبود. یک کتابی هم هست که مستشرقانه شد تاریخ نجوم اسلامی. بسیار بسیار کتاب خوبی آن مراججب هم دا بعد نجوم در دنیا عرب خیلی فواد داره ان آدم معادبی از جز مستاشقان خبیست نیست آدم با ادبی سحرانی کرده در دانشگاه قاهره، قبل از انقلاب واقعه زمان پادشاهی رستم در میز. حالا این بسیار کتاب نقشیسی کتاب تاریخ نجوم اسلامی. خیلی زحمتی شده این شخص خیلی آدم داره خوبه ماراجی. من نمیخوام واژه بیش. خب ببینید یک بحث خوب زکرکو بکنید یک بحث این است که ما اگر باشیم و برخورد فقها و برخورد صحابه و برخورد فقهاهای بعدی و فهم خودمون از حدیث شاید بفهمیم که رجوع و رؤیت جایی است که محاسبات نیست. اما اگر محاسبات بود با محاسب دونستیم که الان ماه تازه نیم ساعت به غروب مونده از تحت افق از تحت شعاع خارج شده در افق و تح... از مهاب تحت شال با اختلاف مبناشون خارج شده امشب اول ماه با اینکه قطعا امکان رؤیت نداره قطعیه قطعی امکان رؤیت نداره بعد 20 23 ساعت بگذره تا قابل اورو یتش بگیم نه ما به محاسبات مواجه خوب دقت کنید من میخوام چه یک ممکن است شما بگید ما باشیم و با مجموعه روایات بلکه آیات من چون حماد بحث بشن بلکه آیات نشون داده میشه حق محاسبات رؤیت به خاطر که محاسبات ممکن نبود دقت کنید رؤیت رو که رسول الله قرار داد بخواست این یک تفک تفکر این جواب کلی که اون سنن داره راه دوم این است که خیلی خواهد برفر یه تفکر هم دیگه هنوزم هم سنی ها داره میگه نه همون رویت اعتبار هست نه ما به محاسبات در نمیگریم اعتبار فقط به رویت دارن سنی هم داره ما هم داریم این سن... یعنی سنی هم تفکر داره هر زور داره. قدم هاشون بیشتر اون تفکر اوله اون تفکر دوم که اعتبار به رویت این یه بخصو دقیق رو کنیم بخ روایت پیغمبر رو برخورده که سنیا کردن ما بیاییم بیدونه اهل بیت در 250 سال که بعد از پیغمبر بودن اونا چی استثار پردن اونا چی پردن دقیق کردیم این خیلی مسئله ما از کردیم در روایت پیغمبر ممکن است کسی مناقشه بکنه ممکنه بگو محاسوبات اعتبار دارن این امکان دارن چیزی اخیراً به اسم تلسکوپ ماسارشی، این که اسمش شده موزهرفی تلسکوپ چیکار است؟ بی‌ارزش نداره. بحث عمدی بحث در باب هلال، دوران هم ما بین محاسبات هست و ما بین رؤیت. تلسکوپ هر طرز نام عادی سکله ادخل. این فرمایید. خب ایده از اهل سنت ایده زیادش هم قائل به رؤیت هست مثل ولا هم. و همین هم فلس این که این بحث محاسبات الان شده. شده. ما روادم از ما مهادی میگه کتاب تو به ما مهادی که ما شب چهارشنبه در بغداد ماه رو ندیدیم و یا بولال حساب به بلندان این که محاسبات این جو میذارن تو بغداد میگن همین امشب تو اندروز دیده تو بغداد قرار نویت نیست تو اندروز قرار نویت و یقول بولال حساب هست بحث محاسبات کیا یه بحث که خیلی پیش این تو زمان خود من واقع شده بحث محاسبات آوشن شد. چی زمان خود عین واقع شده سوال اینه که یک ببینید کلی مسئله منو که بتونه از وقت بزن خالص یک اینه که ما با خود روایت پیغمبر اکرم چه میفهمیم دو غیر از این کالا این چه میفهمیم رو میزنه اون تفوال یکی من اصلا تصاور دو ما از مجموعه روایت اقلبه‌ای که در 250 سال گزن چه میفهمیم و اقلبه چی گفت هیچ از ناشبههی وجود نداره که مجموعه روایت اهل بیت قطعاً رو رؤیت رو و رو محاسبات نیست هیچ شبهه توش نداره این مرحله تصدیق ماست این خلط نشه چون ممکنه بعضی آنوان وقتی مقابل اهل سنت قرار بگیریم قرقاتی صحبت بکنیم ببینیم ما یک صحبتی با اهل سنت داریم بروسن شد ممکنه با یاد داریم با شواهد قران داریم. ممکنه بگیم طبق این مرحله محاسبات ممکنه اهل سنت هم الیش بوده محاسبا محاسبات رو میشه بگم که از مهاق در بیاد میشه اول ما ولی خطر هم دیده نمیشه قابل اوت نیست قطعاً جرم دهقن نیست دقیقاً نشوفو ارزش نداره بلکه از خروج از مهاق و قسمت مستنیش شو شواهد طرف شواهد اون با تلفظ اون قابل نیست مگر جرم ماه رو بتونیم ببینیم و الیگ قسمت مستنیش دیده نمیشه خاطر شعه هایی که داره تحت هستند از کنم خدمتون که دو اینی که ببینیم از مجموعه روایات اهل به چی در میاریم من معتقل تو علماء ما شعنشون فقط همون دوبارم فوقی کتب اصحاب نگاه بکنیم وارد دوبارم شد اصولا وارد بحث اول نشده. مثل جواهر و دیگران مثل من من این کتبی که الان متعارف به ماست اصلا وارد بحث اول نشده. اگر همشته مثل علامه اقوال رو نقره کردن نوارد بحث علمی من خود من معتقل یه راه دیگرشم اینه که نه اصلا وارد بحث علمی بیشیم و نتیجه گیری بکنیم این یک بحث دیگری این کار فقه رو ضربه رو این کار یعنی امتیاز فقه به همینی که ما وقتی در مسئله خلاف پیش آمد درانه در کوفه کاشانی، بین محاسبات لارو رعایت شد. ببینیم ائمه علیهم السلام چی فرمودن. ابوالن تقلی رحمه الله میگه شیعه کسی. که وقتی صحابه اختلاف کردن با علی بن طالب علیه <تصفح> و الان چون ساکن کوفه بود، در کوفه حتی سلمی ها در قرن دومی که ایشان بود از امیرالمؤمنین نرف می‌کردن. حتی ابو حنیفه و دیگران میگفتن قضا علی اینطور وضع و اگر الان ببینیم کلام ابوالن تقلید، میگه شیعه که سیست که اگر صحابه اختلاف کردن فقط به علی ابن عبی طالب برگرد و اگر الان در کلام علی ابن طالب اختلاف شد به جعفر روحمد میگه اگر در وقت بین صحابه اختلاف شد به علی ابن عبی طالب برگرد. اگر... چون, اختلاف... چون مدینه خیری بحث علی ابن عوی طالب نبود چون فقه مدینه تقوه عمر و عبدالعبن عمره فقه کوفه فقه علی ابن عوی طالب و عبدالعبن مسعوده به اصطلاح خودش. و اگر الان در نقل قول از علی ابن عوی طالب شد به جعبه محمد برگرد نه به افرادی که در کوفه از امیر ما بلفعل داریم نمیخوام خواهد مواردشو به امام صادق میگه یربون علیه کذا ایشون مثلا کذو به علی دروغ میگه امیرالمؤمنین مطلب نفر این واقعیت بوده یعنی حرف ابوالقاسم کس بابر این ما توی مسئله جنا هم همین کار میتونیم بکنیم آن این مقدمات حرفش یک مجموعه آیات و روایات رسول الله رو بررسی بکنیم و بعد اقوال صحابه و برداشت هایی که صحابه کردن و ببینیم برداشت های صحابه میشه قبول کرد میشه قبول نکرد برداشت هایی که تابعین کردن برداشت هایی که فقهاشون کردن این بخش اوله بخش دوم کار که اساس فقه ماست من در حسابم این قسمت رو تو فقه آوردم که این بخش اول مثلا فرض مثل صحابه فکر کنیم فرض زبان صحابه هستیم مثل اونا فکر کنیم زمان تابعین هستیم مثل اونها فکر کنیم این خوبه بخش دوم میری که ما اضافه کردیم یعنی اضافه نکردیم این بخش اضافه شد بخش اول بخش دوم این چه خیلی خب حالا که ما اینجا صاحب هستون اختلاف دارن تابعین اختلاف دارن اختلاف دارن اهل بیت نظرشون توی این مسئله چیه اما این مسئله رو ما تو بحث الهالا چون بحث نمیخواستم ارسل من قد مفصل شواهد 10 جولانی این مفسر نمیخیلن از کرد شواهدش ارسل کردیم از کردیم شاید توی بحث آمه اسلامی بشه محاسبات را قبول کرد تو اون بحث اولی بشه قبول کرد محاسبات اما تو بحث دوم که میهم که به اهل بیت و روایت اهل بیت حتیل رؤیته یعنی اینقدر روایات زیاده تطبیق زیاده تعاویر زیاده چون نمیه بحث بشه دیگه تقریبا انسان قطع پیدا میکنه که رؤیته یه احتمال محاسبات این من این رو عرض میکنم برای این که این در محاجه این در مبارسه با اهل سنت بدونیم وقتی که بای فقه اسلامی عام داریم ممکن است محاسبات قبول بکنیم اما این قبول هم قبول تصدیقی نیست تصور بگیم حاضاله هوبت چون قول هم دوتا بیشتر نیست اقوال دیگری نیست هی خیالله بگیم بلاد بعید و قریب و شر و قریب نیست همش اونا برگشش به این تا است اونا از فنی اصول فنی خارج شدن رؤیت و محاسبات یعنی به محاسبات نجومی حساب بکنیم یا به رؤیت ده. البته اینه که الان از اهل سنت و حتی بعض شیعه چسبیدن که بیاییم یک برای وحدت حلال درست بکنه کشور اسلامی یکی بشه ما حتی اگر به محاسبات برگردیم همه کشور اسلامی یکی نمیشه این باطله این تصور غرط اگر میار رو رؤیت بدونیم که قهران که اسلامی یکی نمیشن یه حرفاییه که الان من به جامعه اسلامی فلانیک یک فکر رو کنیم این همه خیالات به اوهام اوهام رو بی خود انسان نیاد اگر میار رؤیت باشه این قهرانی است که در زمان واحد ممکن اصلاس در حجاز یا یمن رؤیت بشه، و در اینا رؤیت نشه این قهرانی ایست که شعبه نداره ممکن است تو ایران رایت بشه تو پاکستان رایت نشه این قطعی است تو مصر رعایت بشه ولیزا در دنیای اسلام هم که بعد در اصل دستگاه خلافت و پیشرفتی که دنیا اسلام کرد آمدن گفتن مثلا بغداد مثلا تا کرمانشاه ها اصفهان اینو ملحق به بغداد میکردن اما مثلا خراسان با مصر ملحق نمیکرد تصویح دارم. در اون منا باید وحدت بودن باز هم مثل خراسان و مسو تسعین بحثی رو که در بحث هلال چون از بحث الهی گفتم خواهش می‌کنید که تصور بکنید یک وحدتی در جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی برای افق قرار بدیم در بحث رؤیت که قطعاً مخالف صددر و مخالفته این حرفایی که می‌ذار وحدت ایجاد مسلمان مسلمانان امکان نداره یک شرمی داره کالهج نیست اگر محاسبات هم قبول کنیم بازم امکان نداره البته همیشه در چون ممکن است کاملا واضحه که مثلا الان ماه توی افق پاکستان یک ساعت بعد از غروبه که از ماهو درآمده اما مثلا برای افق عراق یک ساعت قبل از غروبه اگر ما محاسبات هم بگیریم برای پاکستان باز اول ماه نیست برای عراق اول ماه چقدر میترون ما محاسبات را هم قرار بدیم قطعاً باز کشور اسلامی یکی نمیشه یه چیزی سنی ها فکر کردن اگه ما به محاسبات برگردیم. کشورای اسلامی یکی میشن باز هم یکی نمیشن این هم باز این مثل روز و شب دیگه شویرم با روز شب نداره. ممکن نیست همه کاری زمین روز باشه یا همه کار زمین شب باشی <تصفيق> و این فرمه همه تکلیمیست قطعا توش مسئله خاصی تعبدی نیست پس به هر حال ایلان من نبید این رو خط بکنیم وقتی که اهل سنت میگن مثلا این سنت رسولا اینه از مجموعه این شواهدی که به شما گفتم یه ککنه در میارن حالا سردایی رو تسبیح می‌کنیم از مجموعه شواهد میشه حرمت غینار و در از البسی در فقیه اسلامی آم یا از مجموعه شواهد نمیشه اثبات کرد و علمای اسلام در این مدت چه صحابه چه تابعی چه فوقات چه الهی امناها اینا چه کار کردن در مجموعه شواهد این یک دو ما در روایات ما چی هست؟ ه پس بخش اول رو ما میگیم نه به عنوان فقه خلاف به عنوان تصور یعنی شما احاطه پیدا بکنید بخش دوم ما تصدیق رسول الله